هنرمند کس خیشتن در شگفت بماند هنر زو نباید گرفت همان خوشمنش مردم خیشکار نباشد به چشم خردمند خار وداوند جان و خرد این برتر اندیشه برد سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز درود میفرستم خدمت شما عزیزان شنونده استاد فریدون جنیدی عزیز هر یک شب ما در خدمتشون هستیم و الان هم تشریف بردن سلام عرض میکنم خدمت شما درود بر شما درود بر شما شاد و پیروز اولش خوب شدم خب عجب هوای خوبیه کهار میاد با پیام آشتی و مهربانی و زیبایی و صفا کاش که ما این پیام های طبیعت رو به خوبی درک بکنیم و البته ما ملت ایران این صرف را زیر داریم که گاه شماریمون درست همراه با تپش نبز جهانه و در هفته آینده در باره نوروز چون شب درست شب نوروز خواهد, باره نوروز اسم خواهد اسم اون با امیدی از اون صحبت میکنیم هم 29 اسمم هم, هم فر... هفته فروردین با امید خدا در باره نوروز صحبت میکنیم یعنی شما برای ما صحبت میکنید اما خوب گوش میدیم خیلی خوب گوش شاد باشید از خدمتتون که تلفن های برنامه 222 400 85 222 400 85 222 5 نج دو صفر هشت دو صفر و شماره پیامک -3 -558 -3 -558. شما میتونید با این تلفن ها و با این پیامک با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از قصد فریدون جنیدی بپرسید و عرض میکنم پایگاه تلارسانی ما www.radioforhang.ir هست عزیزانی که اقوام دوستان فامیلهاشون هاشون از سفر میان خواهدت کشور تشریف دارند یا فارسی زبانانی که به ایران میان یا این عزیزان به اونجا سفر به میخواد که بفرمایید که حتما برنامه های رادیو فرهنگ رو بر روی محورهای هاتبرگ بخشی که رادیو هست بشنوین اون بخش اودیو ها رادیو فرهنگ نامش مشخص هست و شما میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو از این اینترنت بشنوید حتما برنامه ما پنجره های رو به رو بشنوید چون بسیاری از عزیزان تماس گرفتن و گفتن که اقوام دوستان آشنایانشون فارسی زبانان برنامه های ما رو میشنوند همینطور که با استاد فیدون جنودی هم در این زمینه تماس داشتن و ایشون به مندم فرمودن و از میکنم خدمتتون که برنامه امشب رو شروع میکنیم داستان کی خسرو هست و رویه چند هستش استاد دیویستو ده. سیاه هشت از دفتر سقبون دیویستو رویه دیویستو سیاه هشت از دفتر سوم یعنی صفحه دیلیزه سی و از کتاب سوم دفتر سوم. اگر شما شاهنامتون شاهنامه های دیدی هست غیر از شاهنامه که استاد فریدون جنیدی ویرایش کردند میتونید شما پیدا کنید داستان کیخستون رو و با ما هم ساز بشید و با ما با استاد فریدون جنیدی شاهنامه رو نگاه کنید استاد برای ما میخوانند و رمز گشایی یه مطلب دیگه هم در همین آغاز من میخواستم قبل از این که حالا داستانی که رو استاد شروع کنم اگر مایل باشید که میدونم مایل هستید چون هفته گذاشتم بسیار سوال کرده بودن در مورد آین شب چهار آخر سال اون ویژگیش اون چیزی که بوده و اون جانش رو استاد درباره این آین صحبت خواهند کرد امشب که ما میشنویم. میخواید موزیکی بشنویم بعد در مورد آینه شب چهارشنبه آخر سال یا همون شب چهارشنبه سوری که عشق خوشمایل خیلی درست و دقیقی داشته و این تروق این چیزهایی که اصلا واقعا من خودم خیلی اذیت میشم رو نداشته و یک آینه درستی بود که ایرانیان ایرانیان همیشه این آینه درست آینه‌های درست داشتن بله آینه‌های درست داشتن این رو شما بشنوید و اون رو درست اجرا کنید پس موسیقی و میشنمیم صحبت های استاد فریدون جوندی رو در باره آین چاشن توفایی نمارد باشه با این آین فکر کنم زیبایی های خاص خودش رو داره مثل هر آین ایرانی که ما میشناسیم و در صحبت کردیم بفرمید پس؟ شما اون پیامی که همین اکتون خوندید بخونید؟ باشه چشم <تصفح> چه همونده ها ما جلوتر با بخونید روز پایان یافتن شاهنامه بر ایرانیان خجسته باد روان فردوسی شاد باد شاد باشید شما که در این انشه هستید و امشب باید در این زمین هم ما با هم گفتو که بکنیم با و اما در ایران باستان گاشماری بر بنیاد شمارش روزها نبوده بلکه هر روز برای خودش اگه داشت این چند بار من در موضوع مختلف اشاره کردم که روز اول افرامزدار روز دوبار بهمنک که اندشینی که ویژه خداوند همتا خرداد و امرداد و آبان و مهر تا سی روز که روز آخر و چنگ در ابستا بوده که در فاستی شد ع ایران یعنی روشنایی بی پایان و چهار روز تقریبا تعطیلی داشتیم که دو تاش به فاصله 8 روز و دو تاش به فاصله ه روز اتفاق میافتاد بنابراین اون چهارده روزه اونم 16 روز ماه رو پر می یعنی همواره ماه با این روزهای های ماه با هم دیگه به سامان می رسیدن. و طوری نبود که ماه ها بیفته مثل گاشماری امروز جهان که بنیاد هفته است ده. خب با این پیشگفتار می تونیم پی ببریم که نام چهارشنبه سوریه نام کوهان ایرانی نبود باشه برای چهارشنبه ما نداشتیم اصلا اما علت چیست؟ علت این که در ایران پنج جشن برای دریافت محصول در مواقع مختلف سال برگزار میکردن به نام گاهانبار که یعنی گاه انبار محصولات بود که در این جشنها به یاد نیاکانشون به یاد درگذاشتگان در روان فراورها دهش و بخشش میکردن البته همه به یکدیگر بخشش میکردن و در حقیقت در یک جامعهی بود که همه از هم برخوردار میشدن و همه به هم بهره بحره میرسوندن این رو یک آینی نیک میدونستن که از سمره زحمتی که کشیدن به دیگران برسونن این جشن ها یکیش در پونزه اردویش بود به نام میدیوزر امگاه میدیو میدی یعنی میانه همونی که در انگلیسی شد میدل و در فارسی شد میدان میدانم یعنی میانه جا میانه یه مکن میدیوزر امگاه یعنی میانه سرسبزی این پونزه هم اردویش بوده درست در میانه سرسبزی جهان بوده و گیاهانی که به دست میمد تا اون زمان اینا رو جشن میگرفتن و مثل مثلا از پست یعنی یونجی یا مثلا شبدر یا بعضی از میباها که تا پونزه همه ارده به شما اینا رو در آین ها به همدیگه میداده گهنبار هم دومی در تیرما اتفاق می‌افتاد که معیدی و شهیم نام داشته یعنی میانه دانه ها یعنی بعضی از دانه ها زودتر می رسید بعضی از دانه ها دیرتر میرسید. مگر هم بور سوم که در مهر ما انجام می گرفت، پتی بود. یعنی تو گرداباری همه دانه ها. این یک همبار خیلی خیلی مهم بود برای که می دونید که بر بنیاد گندم و جو زندگی ایرانیان می گذشت. گندم خود انسان ها می خوردن و جو هم به اسبانو در به انها اینها بعد از اون فصل پاییز بود، فصل زمستان جماوری بود، آماده شدن همه همه بره. بره. بعد یک گهنبار دیگه در آزرما بود که ایاسریم گاه بود یعنی زمان برخورداری از خوشبختی و یک گهنبار دیگه بود که میانه دیما قرار میگرفیه بهش گفتن میدیارم یعنی وسط زمستانه اون دیگه میبای زمستانی مثل شلقم و چوبندر و حویج و اینا اینا به عمل میمد اون وقت بعد از این پنج گهنبار که در حقیقت برخورداری از دهش خداوند بود یک همبار در پایان سال این یعنی پنج روز پایان سال داشتن که چون هر ماه سی روز بود دوازه سی روز روز اون پنج روز که همبار بود که برای روان در و نیاکان میگرفتن و ایمان بود در ایران که این در این پنج روز و در آغاز سال نو روان در و پیشینیان میاند به خانه خودشون سر بزنند بنابراین در این خانه باید تنور گرم باشه نان گرم بیاد بیرون و خجاخا کار بکنه و خوراک بفزند بوی خوش از این خونه بیاد بیرون و آتش باشه گرما باشه تمیز شده باشه که این موضوع هنوز در خبرستان و گیلان به خوبی دیده میشه یعنی در هفتش در روز پیشتر از در پونزه روز پیشتر از نوروز این فارسی بونووانم هست یعنی این کار بونووانی که میرم از یه جایی نزدیک گل سفید داره میگیرم تمام خونه رو شما دیدین بله دیدم سفیدون سفید میکنن خانه. ما خودمونم این میکنیم یعنی من خودم این کارو کردم یعنی قبل از این خونه رو ترظیم میکردم یعنی همین خانه تکانی که ممکنه همینه دونبله همون بعد اونطور در تابلوسون ایران دیوارها رو سفید میکنن زمینات رو سفید میکنن تمیز تمیز و اعتقاد بلینه که اونها وقتی بیان ببینن در خانهشون شادمانی هست و فرزندان آسودگی دارن لباس های نو دارن بوی خوش میاد و با شادمانی به جهان فروهران و عالم مینوی برگردن اون اربا، اون, اون قوان ها خب این پیداست که یه چند جشنی که هزاران سال بوده نمیشه از یه مردمی گرفت اما خب بعد از این که اسلام رو پذیرفتن حالا من اینجا برای شما بگم که یک روابطی بین معادلات چند مجهولی که خیام اون روابط رو پیدا کرد بعد از پنسد سال پاسکالم اون رو پیدا کرد و جهان غرب که بیخبر از خودش هست این رو کردن گفتن مسلسه پاسکال بعد فهمیدن که نه خیام زودتر از پاسکال این کار کرد یه خودش رمنده شده بودن بگیم خیام پاسکل یه مدتی گفتن باز دو مرتبه تموم شد بازم حالا هم میگن پاسکال ما موبت بدونیم که چون هر دو یک سخن رو گفتن هر دو از یک راه رفتن و چاره ای نیست که پاسکال گام به گام پشت سر خیام گام برد و تا برسه به نتیجه که خیام اون زمان رسیده بود حالا من این چیزی که من میگم تردید نداره از نظرره ندار خررد که همینا همین بوده خب گروهی که در یه شهری مسلمان شده بودن به بنا به عادت پیشین برای این که انبار خودشون آماده میکردن و ماموران خلیفه اومدن که به شما که هنوز آینه کبراکند دارید و می‌خواید که انبار بگیرید و اینا بعد اینا چوری نبود که خب بگن که ما نه نمی‌خوام که بار بگیریم. گفتن پس چیه؟ گفت این سوره یه سوری خب بگیریم گفتن اسمش چیه؟ گفتن چهارشنبه سوری. در حالی که سور اصلا از واژه ساور اوستایی به سوری سانسکریت گرفته شده، یعنی میمونی هنگام روز. سور اصلا یعنی روشنایی. در هنگام شب نمیتونه باشه. خوب حالا میوزه چهارشنبه سوری. گفتم خوب ات چرا آتیش روشن کردید؟ گفتم خب هوا خب سرد بود و روشن کردیم. شما با آتش دشمن خب ایرانی ها نمیتونستن این کار بکنن چون از جمله آتیش هایی که شمرده می شود یکی گرمای تن انسان بود که اگر نباشه خب زندگی نیست ولی با این ها گفتن که سرخی تو از من زرده من است تو گفتن که آتیش رو زیر پا بگیرید خب این اینا هم از این رو آتیش پریدن بگید این اندازه حالا شد سال آینده دیگه اینا نمیتونستن گهنبار رو روز شنبه بگم یک روز زودتر تر بگیرن بنابراین باز همون چهارشنبه گفتن چهارشنبه سوری. یعنی این رو به این ترتیب ادامه همه یاد روان نیا اون وقت اما اگه بنگریم به م... اینها چهارشنبه سوری همش ارتباط با یه جهان مینویی داره. یعنی مثلا فرض کنید که در کردستان اون هایی دیدین که سقف این خونه، پشت بوم این خونه، حیات خونه‌های بالایی بله بله. هر اواغم یک یه داره. از اون بالای شال میفرستادن پایین، از پایین یه چیزی توی شال این میوسان میرفت بالا. یه ای خوراکی چیزی. اینو بله. اینو بدون ببینن اون کی هست، میفرستادن یه چیزی به عالم مینو. یه عالمی که دیده نمیشه، به آسمون میفرستادن. اون کسی که میگرفت با خودش فال می‌زد که مثلا اگر سنجد باشه این، اگر گردو باشه این، اگر توت خشک باشه این، در حقیقت یک نوع ارتباط مینووی بین این دهنده این میوها و گیرنده اون بعد اینا که قاشق میزدن این همینطور چادر رو سرشون میداختن البته من تا اونجا که دیدم قاشق زنها بیشتر پسر بودن ولی چادر رو سرشون میداختن و باز اون سابخونه یه چیزی به اینا میداد اونا بدونی که شناخته بشه از طرف سابخونه اینا اینو و فال بعد خب کوزه آب هم یک سال این سرخاش اینا گرفته میشد و تقریبا فقیر میشد دیگه نمیتونستی آب تمیز بده باید یه وقت این کوزه رو میشکستن اما ایرانی هیچ وقت این کار رو نمی کنه یعنی بیاد کوزه خود خودش بشکنه اما اگر در آیین باشه این کارو میکردن یعنی یه سکی میдохتن تو کوزه شب و چهارشنبه سوری کوزه رو پر آب میکردن از بالا پوشون میдохتن توی کوچه و کوزه که خراب بود دیگه لازم نبود الان در گیلان گمج ها میکنن. یه روز قبل از چاشن به سوری میارن بار بکنن اون وقتا که با اولاغ میارن حالا که با وانت و پیکان اینا میارن گمج های نور رو میخورن رو میشکنن گمج که دیدین بله بله قضا میپزن قضا خوشمزن درمون موفتن یعنی این کار با این که دیگه کوزه از بین رفت بلی در گیلان گمج هست گمج رو همیکار بکنن کوزه نو بیاد اما اون سکی که در اون بود یه نفر پیدا میکرد حالا چون اون شب چه فردا باز این ارتباط بین این کسان بودن با اون کسی که اون سکهل رو پیدا میکرد که نمیدونستن کی هست باز با همه این ها بود و دخترا به وقت میرفند که گوش میکردنوش گوش می میکردن کی زودتر ازدواج بکنیم وقتی این... این همین دخترا بختیار هستن اصلا بختشون باز هست بله. ولی خب اونا گمان دارن که این دربند اینه که یه ازدواج صورت بگیره باید. اصولا دختر مادره و مادر مقدسه به هست صورت این, این ها باز اتکس که نمیشناختنش یه چیزی میشنیدن و با خودشون فکر میکردن که اگر فلان چیز رو گفتن مثلا این حمل میشه به اینکه که ما ازدواج خواهیم کرد همه این آین که شما می‌بینید همه ارتباط مینووی بین یه شخصی با کسانی که اون رو نمیشناسه. یعنی برمیگرده به همون مراسم که همبار. که همباره هم اثبت مدیمگاه. یعنی وقتی که روز و شب یا سرما و گرما با هم برابر میشه. معیدیم یعنی میانه. باز هم معیدیم یعنی میانه. اما خب این آین در ایران بنام چاشم به سوری روان شد، وقت از هفت روز هفته که هی می میشرخید، پنج روزش جروز که همبار بود. دو روزش روز که همبار نبود، ولی چاره نبود نبوده، اینا گفتن چهارشنبه سوری بود، چهارشنبه می بله. و خب من سراغ دارم بانوان که هنوزم مثلا در دلیجان شنیدم که آش شب پنجم رو یعنی همین آش در مال که همبار فراهرام باشه از آش نوروز گرامیتر میز هنوز کسانی هستن که این این کارا رو میکنن همین یعنی ادامه میدن اون آیین پیشین رو اما در خود شهرها چی بود من الان تهران رو به شما ارز میکنم که شما شاید یادتون باشین. یه شوتورگونی از برامین میواده بله. و اینا بوته میوردن هر خانوادی سه تا بوته میخرد و از روی, روی بطه ها که می تو خونه خودشون یعنی تو کوچه و خیابون و میدون و اینا نبود این سه تا رو که آتش می زدن مثلا خانواده ها مثل امروز نبود که خانواده دو نفر سه نفر باشن خانواده هفش نفر بودن معمولا تا اینکه اینها اینا از روی این بطه ها بپرند بطه خاموش شده بود و این نهایت کار آتش افروزی بود که در چاشنب سوری می خب متاسفانه خ برخورده هایی شد که حالا به این صورت در آمده که, که این درست نیست باید بدونن که بیماری در بیمارستان خوابیده یا در خونه خوابیده اینها آه. ولی خب البته دیگه هم حالا اون شطوربون های ورامین نیست که خانه. بوتر بیارن اینها بچه به به فش فشفشو و به ترقب و بومب و اینها دیگه روح بودن هر صورت آه این, این چارشنب سوری این بود که ارز کردم ورگ مخش پسین ما درباره پایین یافتن جشن پایافتن شاهنامه فتوسی سخن مییم. امیدده خدا فقط عاصل کنم خدمتون همین اینجا ااصل کنم خدمتون چون در درباره آین شبش چهارشنبه به سوری صحبت کردیم. ما در برنامه های مختلف در رادی فرهنگ بود در مورد این بیشتر در زیاد درباره این زیاد صحبت کردیم ما از اون رو آتش نشانی صحبت کردیم که من صحبت کردم گفته کردم. واقعا سفارش کردند که ما میخواییم آین هامون رو پاس داشت کنیم پاس بداریم به اونا توجه کنیم نمیخوایم این طرق بازی ها رو شما بچه هاتون رو عزیزانی که الان صدای ما رو من پدرها و مادرها یا فرزندانی که شنونده, شنونده خوب برنامه ما هستن از هفت ساله از پنج ساله داریم از هفت ساله داریم تا به پیرمرد که نه جوان ن اینها حتما دقت بکنن راهنمایی کنن این عزیزان رو که یک آین به درستی انجام بشه من این خواهش رو دارم و عزیزانی که در آتش نشانی بودن در ایمنی بودند، اونها هم این رو سفارش کردن خب ما در بخش بعدی البته پیامک اومده اینجا برای ما که صحبت کردن و حالا من در مورد صحبت و سوالا رو مطرح میکنم دوست دارید چند تا پیامک فرستاده که خیلی به شما سلام رسونده البته نمیتونم بخونم خیلی احساسی برای شما نوشته که دوستتون دارم و کنید خیلی این آقا حماون عزیز 18 سال است کوه که میدونم اینجوری نباید بنویسه استاد دوست ندارم اصلا به این صورت باشه اما احساسات رو بیان کردی ممنونم ازت که این رو درباره استاد فکر می کنی و دوست داری انقدر استاد رو دوست داری و من ار میکنم الان ج نمیتون که اون قدر روطرد میکنم و خیلی تین خیلی خوب با در وقت شما صحبت کردم. ممنون از شما همه اون عزیز ما میخوایم تو بخش بعدی بپردازیم به, به همین مطلبی که استاد همونم و این پرامه که اومدن و چقدر خوبه این چنونده ها جلوتر از ما هستند. از استاد میخواستن صحبت کنم. من فکر نمیدونستم که از استاد پرسیدم استاد گفتن صحبت خواهم کرد در این باره پایان یافتن شاهنامه 222-4185 222-4185 دیویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پامک سی هزار پاند و هشت سی هزار پاند و پنجاو هشت شما با ما همراه باشید تعداد زیادی از دوستان باز خاستند با استاد فریدون جنیدی صحبت کنند من همینجا ود تلفن بنیادی نشاپون خاستند من همینجا خدمتتون ارز میکنم ل در فواصل عرز میکنم که اگر خواستید تماس بگیرید با دورواش یا همون تلفن 828 96 27 84. تلفن تلفون بنیاد نشابور 828 96 27 84. 4 دورنگار یا فکس بنیاد نشابور 828-96-22-4 کلوس 88 96 22 43 خیلی از شما پیامک دادن که می‌خواین شاهنامه استاد فریدون جونیجی رو که بیاییش کردن رو داشته باشید با این ها تماس بگیرید موسیقی میشنویم و استاد درباره پایان یافتن شاهنامه که برای منم جالب است نمیدونستم هر اون جشن بزرگ پایی آفتن شاهنامه شاهنامه خوب خب دنبال سخن رو میگیرم که همطور که عرض کردم هر روز نام داشت و روز بیس پنجم هر ماه روز در عبستا بود یعنی برترین راستی و در پهلوی تبدیل شد به ارت در فارسی به ارت و ارد بنابراین روز 25 پنجم هر ماه نام ارد داره و این روزم بیجه زنانه در جشن سپندار من از کردم که علاوه بر خود جشن سپندار مزگان در ماه یک روز دیگه هم هست به نام ارد که به مردم توصیه کردن که اگر شما مخواییم که یه چیز نو بخرید ببرید به خونه روز ارد ببرید تا اینکه بانوان و دختران از شادمان بشن عنوان یه هدیه پیشش بپذیرن از شما. این روزی است که فردوسی در پایان شاهنامی بفرمد که شما پایان رسید من گفتار فردوسی رو می خوونم سرآد کن نامه ازگرد به ماه سپ اورممز روز ارد یعنی ۲ پنجم اسفند اسفند باستانی. به ما حسوم دارمز روز ازه هجرت شده پنج داد بار پنج هشتاد یعنی چهار که چه پیوستم این نامه نامدار هران کس که دارد حوش و و دین پس از مرگ برمن کنند بافرین بیت دیگه در این میانه هست که اونا از افزود هاست خب حالا چون ما کارمون اینی که افزود ها رو نشون بدیم اون سویت رو میخونم یکی اینی که بناهای آباد گردد خراب باران و از تابش آفتاب این بیت برگرفته از داستان ساختن ایوان مدائین است. می که در جهان امروز یک انجمنی هست انجامن بینرمالی آرشیتکت ها که در حقیقت پروژه های بزرگ رو یعنی برنامه های بزرگ رو بین آرشیتکت جهان به مسابقه می و بعد با یک حیات داوری تصمیم می که کی اون برنامه انجام بده. اولین کاری که با برسیل این انجامن آرشیتکت ها انجام شد بنای بودی جوش پومپیدو بود در فرانسه در پاریس. دومین کاری که قرار بود انجام بگیره کتاب خانه شهستان پهلوی بود که اشخاص برندگانم نامشون معین شد ولی خب انقلاب شد و دیگه این موقع شد و بعد. بعدها باز این انجامن بناهای بزرگ دیگری در سخت و سر جهان برخور کردن که همه بر همین بنیاده یعنی 100 نفر 200 نفر 1000 نفر برای شرکت بگنن از اینا یک گروه مثلا 5 نفری از اون 10 نفری از 10 نفر آخر وقت با مصاحبه یه نفر رو انتخاب میکنن این کار برای ساختن ایوان مدانی شد یعنی 3 هزار بیاورد بیا کاریگران 3 3000 تا هر کشوری هر که بود نام دار و از این سه هزار نفر 100 نفر رو برگوریدن از صد نفر ده نفر، علبه نفر سه نفر و اینجا مصاحبه در حضوری گذاشتن. که شخصی بود به نام فرغان رومی. نه اینکه از کشور روم باشه بلکه از آسیای کوچک باشه که ما اونجا رو روم بکفتیم. همین الانم که مولوی میگن رومی به خاطر اینکه مثلا در اونجا زندگی میکرده. مگران مایه رومی که بود هندسی به گفتار بغزش از پارسی. یعنی در مسابقه حضوری پیروز شد و خسرو پرویز این اینطور گفت که یکی کاخ خواهم که فرزند من همی تا هم تا بسی سال پیوند من به دو در نشیند نگردد خراب زباران و از برف و از آفتاب می‌بینید که اون بیت برگفسر زینه در که یه خوردم تغییر شدن ز باران و از تابش آفتاب در اینجوری از برف چون ستمی که ساختمون میبینه بیشتر از برفه چون یخ میبنده و با بعد باز میشه و با شکاف میاره بله اون برگرفته باز... از اینه به ایت پسی که ام... نمیرم از این پس که من زنده هم که تقم سخون رو پراکندم این اولا که از از دستور یک ایراد داره که دوتا کی موصول توی یک جمله نمیشه باشه میتونه یکیش کی زمیر باشه یکیش کی موصول اما دو که این محصول جمله رو ویران میکنه و از گفتار فردوسی به بعدم از در باید پذیروف که نمیرم از این پس به دنبالش نباید گفت که من زنده هم. باید بگه که زنده خواهم ماند. و از طرفی نمیرم در بیت پسین یعنی بیت پایانی شاهنامه به صورت مرک در گفتار فردوسی اومده. الان کس که دارد خوش رای دین پس از مرک برمن کند آفرین. این بیت تردیدی نداره که از آن فردوسی هم از بابت شیبایی گفتار و درستی سخن هم از اینکه انوری وقتی که یکی از بزرگترین شاعران ایران بوده وقتی شاهنامه رو میخونه که بیگمان یه شاهنامه بیآلایش و پاکیزه سروده خود فردوسی رو خونده بوده این بیت رو که میخونه دو بیت در ستایش فردوسی مینویسه که در دیوانش هست که آفرین بر روان فردوسی آن همایون نجاد فرخونده او نه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و ما بنده باید بدونید که یه مغروری مثل انوری وقتی که خودشو بندهی فردوسی به شمار میاره اون وقت ببینید که پایگاه سخن فردوسی و اندشه فردوسی کجاست. و ضمن این آفرین بر روان درست پاسخ همونه که همون کس که دارد خوش رو قایدین پس از مرگ مر مقصود من که در روز 25 پنجام اسفند باستانی سال چهارصد ست شاهنامه پایان رسیده ده. و این یک جشن بزرگ در حقیقت فرهنگی برای ما ایرانیان باید باشه ما با شاهنامه هویت خودمون پیدا کردیم نیاکان خودمون شناختیم عظمت و بزرگی نیاکان فرخ خودمون رو دریافتیم پایگاه ایران رو در پهنه فرهنگ جهان پیدا کردیم خورشید تاوان فرهنگ ایران رو شناختیم همه اینها رو ما البته فرمان اون سردار بزرگ خراسانی انو شهروان ابو منصور محمد ابن عبدال رزاق توسی کنو رنگ خراسان پور باباک خراسانی هستیم که شانامان دستور به گردآوری داد و بعد اون چهار کس که فرا خوانده شدن به توس یکی موبد شادان برزین از شهر توس یکی موبد خورشید است. شهر نیشابور و یکی موبدی از داد از سیستان و یکی پهلوان بزرگ خراسان، از هرات فرخ اون روزگاران خوب که بین نیشابور و هرات و سمغند و بخارا دیوار نکشیده بودند و این چهارکس در بیاری روانشاد ابو منصور به سرپرستی ابو منصور معمری وزیرش شاهنامان از متون پهلوی ترجمه کردند به فارسی که به دست فردوسی افتاد و فرزند ابو منصور امیر منصور یاوار فردوسی بود که من اوایل نخوندم بازم چون جشن پایی افتن شاهنم هست خوب هست که من دوباره اینو بخونم که بدین نامه چون دست بردم فراز یکی پهلوان بود گردم فراز جوان بود و از تخمه پهلوان یعنی پسر ابو منصور بود خردمند و بیدار و روشن روان مرا گفت که من چه باید همی؟ که جانت سخن برگراید همی ببینید پشتیبان فردوسی امیر منصوره به چیزی که باشد مرا دست رست برارم نیارم نیارم نیازد بکست همی داشتم چون یکی تازه سیب یعنی مثل یک درخت سیب تازه من یا سیب تازه منو نگهبانی میکرد که از باد بر من نیارد نهیب چون نام بر گم شد از من که از باد سر به صحیح در چمن نزو مرده بینم نزنده نشان به دست نهنگان رو مردم پوشون. اینا رو من در یکی از برنامهات پیشین این گفتم در حقیقت کشنده روانشاد امیر منصور محمود غزنبی بود یعنی کاری که محمود در باری شاهنامه ما کرد اینکه که پشتیبان بزرگ بار رو کشت و نه در زمان محمود بلکه در زمان مدود باید شاهنامه رو بردن پنج شاعر موزدور رو از رو افسودن تا اینکه در بین اون افسوده ها نام نامباره که محمود رو هم بیارن و اینطور شد که شاهنامه ما گسترده شد که که شما دیدید در حتی در اون پایانی سه بیت افسود است که متعلق به فردوسی نیست ما برای این جمع جمعی که نام بردم انوشهربان ابو منصور محمد ابن عبدالعز آتوسی انوشهربان امیر منصور فرزند نام رو روان شاد او مسور محمری، روان شادان, شادان برسین ماغول خورشید یا از دانداد ماخ این کسانی که شاهنامه را حمایت کردند تا به سمر برسه و روان همار جاودان ایران روان هموار نگران ایران، فردوسی شاد باد که فرزندان ایران در این شب پیشتر از اینکه من درباره این جشن بزرگ سخن بگم اونها ابراز آگاهی و ابراز بیداری میکنند یافتن شاهنامه و تولد سال نوروز نو، بهار چه تقارونی قشنگی داره ما ایرانیان با شاهنامه زندگی کردیم هر کدوم از ما بس شاهنامه میدونیم خیلی از چیزهایی رو که داریم تاریخمون رو و آگاهی که پیدا می‌کنیم درباره نیاکانمون درباره سرزمینمون و در این سال گذشته و اندکی خود سال قبل هم دو ماه سال قبل هم یعنی در سال 1988 با استاد فریدون جنیدی بودیم بس بهتون قول بعد این قول رو بهتون بدم که هفته آینده یعنی 29 اسفند ما و همینطور هفتم فروردین ما حتما شنونده برنامه های ما باشید هر جای ایران که هستید اگر خارج از کشور هم هستید هر جای دنیام که هستید شما میتونید برنامه ما رو بشنوید از طریق مافارقی هاتبرد اون بخشی که شبکه رادیو هست و شبکه فرهنگ رو پیدا کنید و برنامه ما رو بشنوید از میکنم استاد خدمتون که یه سوال اومده با درود به استاد فریدون جنیدی و آقای هدایتی سلام علیکم در شبخای فیش استاد در جواب ایک از پرسندگان گفتند ابیات زیادی به شاهنامه اصدوده شده است اما خوشبختانه چیزی هست نشده است این در حال است که خود استاد در جلد پنجم صفحه 498 نوشتند که بخشی از داستان بیجند و یزگیت برداشته شده است در این باره راهنمایی فرمایند شمسایی از درشت درود بر شما و به دریای گیلان و مازندران و هیرکانیا و کاسپین خود دیگه شادمانم که خندندان به اینجاها میرسند که اینا رو می اون بخش که از شادمه کم شده بسیار ناچیزی در برابره اون بخش که بهش اضافه شده و داستان بیجن و یزگیرد هم در حقیقت با تا... تا... پجویش که علی حسوری کرده درباره آخرین شاه تقریبا همخانه برای که میبینیم که در آخرین شاه یزگیر تنها به طرف مربون اونسوها نرفت در شهرستانهای دیگه بوده که آثار سکه هایی زر شده او است در این زمین هنوز باید پجویش انجام بگیری تا به یه نتایجی برسه اما خوشبختانه از شاهنامه سخت اندک کم شده و بیشتر اون چیزی که هست نمی گفتار هفته دوستیست که من نشون دادم دیگه بله داستان که خسرو آغاز کنیم روی دی و سی و هشته دفتر سوم. دفتر سوم نخست چون که خسرو آگاه شد این سخن که کار نو آورد مرد که اگر به خاطر دو افراسیاب گریخت من خود رفت به دریای زره یعنی آقیونس آرام یا کبیر آرام من نبیدم چرا نام گذاشتم برای که ها آبان از آرام گذاشتم برخی گفتن چون در برابر امواج، آقیونس اطلس آرامه در صورت اقیانوس کبیر ما اونجا را میگیم زره در شانمان آب زره همه جا. گریخت گریخت و این دنباله داستانه که را آگاه شد این سخن که کار نبا نو... نباورد مرده کهون از روی 238 تا 246 همراه فودس